دنبال پناهگاهی در این زندگی پراشوب میگشتم میخواستم چیزی پیدا کنم که خودم را به آن بچسبانم بلکه این بحران روحی و اخلاقی که به من داده بود سپری شود رفتم با جوانه کی را که استفانو در روم نام او را به زبان آورده بود پیدا کردم اما این کار دشواری بود در سال دوم توقف در پاریس بود که او را در مدرسه هنرهای زیبا دیدم می شناختمش نامزد ملوسی داشت ولی مدت ها بود که دیگر در این محیط دیدن نمیشد. از هر کسی سواغ می جواب مشخصی به من نمیداد. یادم میآید که از وقتی سرهنگ آرام احوال او را پرسیدم گفت اوه oh, این از آن دو آتیشه هاست از محسین برلین هم بدنامتر است شما با اینها چه کار دارید؟ اغلب محسسین ایرانی مقیم پاریس او را می شناختند. منتهی که کجا می شود او را پیدا کرد و یا میل نداشتند درباره او اظهار اطلاعی بکنند. بسیاری از پرسش من تعجب میکردند و چون از خیشاوندی من با سرپرست محاصری نظامی اطلاع داشتند، تصور میکردند که من به قصد بدی از احوال او تحقیق میکنم. پس از یک هفته بالاخره او را یافتم. دانمون پارناس لال وین منزلی گرفته بود. ماسین ایرانی او را خوب می شناختند اما هیچکس کس میل نداشت علنن دعواره او اظهار اطلاعی کند. این جوان بلند و باریک با وضو شفته تنها کسی بود که با چشمهای های عشق زده به من نگاه نمی کرد. شاید برای اینکه دختر ساده و ملوسی مانند خواهر مهربانی از اون نگهداری میکرد شاید هم برای اینکه همیشه بیمار بود و خود را در آخوش مرگ میدید آخ چقدر دلم میخواست امروز که شکست خورده و وازده شده هم او را میدیدم یقین دارم که او مرا باز سر شوق میآورد و شاید راه نجاتی به من نشان بدهد آخ چه خیالات خوشی این پسر سرگرم مبارزه بود دائما از وقتی که خودش را میشناخت و میزد و میخورد امواج زندگی او را از صخرهای به صخره دیگر پرتاب میکردند اما بیتاب نمیشد از دشمنهای سرسخت استبداد بود و در این عقیده خود به حدی اصرار داشت که هر موضوع دیگر را تحت شای این توزی قرار میداد میدانم که مهربان و همدم و یار با وفایش فقط شیفت این اراده سخت و خیل سریع او شده بود. او را خدا داد مینامیدند و من نمیدانم چه افسونی به کار برد که من در زندگی خود را با او فهماندم و او توانست خودش را در زندگی من جا دهد. این جوان رکبی پرواه صحبت می کرد تا آنجا که گاهی بیعدب می شد. اما طرز بیانش زننده نبود. هرچه بیشتر حقایق منحوس زندگی من رو به رخم می کشید بیشتر مفتونش می شدم وقتی او گفتم که استاد ماکان چگونه با من رفتار کرد و من چگونه او را به, پدریم، به پدرم معرفی کردم بیرو در واسی گفت همین بزرگترین دلیل نافهمی توست تصورش را بکنید من به هیچ کس پر نمی دادم که با من اینجوری صحبت کند آنهای دیگر جوانانی که به اندازه پرکاهی در نظر من ارزش نداشتند همه با یک اشاره من چند ملق می زدند. اینها آدم نبودند و من هرگز به آنها اجازه نمی که از فاصله زیاد چند قدم فراتر بگذارند. به علاوه رفتار من با آنها رفیقانه نبود. در صورتی که این جوان لاغر رو بلند در همان نخستین روزی که پس از برگشت از ایتالیا به ملاقاتش رفتم، نافهمی مرا را به رخم کشید. من مرعوب شده بودم و جرأت نکردم خشمناک شوم. چه برسد به اینکه گستاخی او را به وجهی جواب گویم. به سحمت خانه را دنمون پارناس پیدا کردم. در طبقه ششم زیر شیروانی منزلاش، نصف بیشتر اتاق را سخف ماورب گرفته بود و از پنجره کوچکی نوربان می‌تابید. میتابید تا چشم کار میکرد بام های پوش و دودکش از دریچه دیده میشد روی دیوار رشته های رنگی که جریان آب باران باقی گذاشته بود به چشم میخورد ساعت یازده بود چون شنیده بودم که در خانهاش کار میکند پیش از ظهر رفتم اما خودش خانه نبود نامزدش از من پذیرایی کرد. این دختر را یک بار دیده بودم اما با هم آشنا نشده بودیم. زولفای مشکی چشمهای قزال داشت. خیلی خوشگل نبود اما صورتش مثل یک پسر هجده ساله زنده و شیطان جلبه می کرد. اندام چالاک و چابک او آدم را جلب می کرد. مهربان و از نخستین دخترهای ایرانی بود که به خرج دولت به فرانسه فرستاده شده بودند پنهان از سفارت و اداره سرپرستی با خداداد آمیزش داشت در فاکولته پزشکی پاریس اس نوشته و میخواست پزشک کودکان شود از نگاه اول ادراک کردم از دیدن من خوشنود نیست این دختر آنقدر سادهدل بود که کوچکترین تأثر در قیافش منعکس میشد با ورد این پاک دلتر از آن حدی بود که می نمود من هم از آن کسانی نبودم که از او رو برگردانم سر صحبت را باز کردم گفتم آمدم خداداد را ببینم من از روم میایم آنجا استفانه را ملاقات کردم شما استفانه را می شناسید؟ می او را به حرف وادارم جوابی نداد فقط با سر اشاره کرد من دنبال سخن را گرفتم. استفانه امروز بزرگترین نقاش دنیاست از خداداد احوال پرسی کرد. آمدم کارهایش را ببینم. مثل گل اول بهار خنده کرد و عقده دلش باز شد؟ خداداد دیگر کار نمی کند. چرا مهربانو لحن گیرایی داشت؟ مانند سیم تار با کوچکترین ضربهای که به قلبش میخورد به صدا در می‌آمد و ارتعاش آن مدتی در هوا میپیچید یک چین کوچک روی پیشانی او فوری قیافه بشاش و دلپسندش را غمزده و رقتانگیز کرد. نگاهی به سپایه نقاشی که رو به دریچه قرار داشت انداخت روی سپایه یک تکه مقوا به قطر وذیعی بود و من از این طرف فقط سایه آن را می توانستم ببینم دخترک متوجه نگاه من شد و گفت همه کارهایش همین است گفتم بگذارید من ببینم ناتمام است بهتان نشان میدهم بلند شد و میاسه که رنگامیزی آن ناتمام مونده بود برداشت و به من داد و گفت از این ها می و میفروشد و زندگی می کند. دیگر وقت برای نقاشی حسابی نمی مانند. چرا؟ مگر برس دولتی دیگر بهش نمی دهند؟ نه خیر الان شش ماه هست که قطع کردند و با فروش این میترها زندگی می کند. چرا بهش نمی دهند؟ نمی دانم چه بگویم از خودش بپرسید بعدا خدادران را میشناسند همه میدانند چگونه فکر می میکند حتما شما را هم ترساندند پس از مدت ها این اولین دفعه است که یک نفر ایرانی به سراغ او میآید مثل اینکه صدای پایش میآید نظرم خودش است زندگی عجیبی حال راه رفتن ندارد با وجود این دائما در تکاپوس هیچ به فکر سلامتی خودش نیست همش سرفه می کند. هم بد نمی آورد. می سرماخوردگی خوردم. سرما دائمی هیچ شنیده بودید. همیشه خسته است. بزرم تپ هم می کند و من بروز نمی دهد. وقتی هم که برایش میماند باید از این چیزها بکشد. هرچه هم که در می آورد باید خرج دوا و دکتر کند. مثل پیر از پله ها بالا می آید. از دور صدای شادی به گوش من خورد. مهری با کی داری حرف میزنی؟ مهربانو بلند شد. رفت رو باز کرد و بلند جواب داد. بیا خود تماشا کن. مهمون داریم. حالا دیگه مهم شدی. از ایتالیا میان کاراتو ببینم. خجالت بکش. چی داری نشون بدی؟ خداداد با اندام بلند و سینه تنگ و موهای جولیده با جدی که در پیشانیش تاب میخورد در آستانه اتاق نمایان شد یک وسط بزرگ زیر بازویش بود پالتاش را رو روی آنها انداخته بود اول روزنامه را که به فارسی بود روی زمین گذاشت و بعد پالتاش را لبه تخت پرد کرد خیلی خوشحالم که آمدید اما بگوید ببینم نترسیدید چطور جواهد کردید چه من بیایید؟ بعد رو کرد به مهربانه و گفت چه بی خودی میگویی؟ از ایتالیا نم... نیامدند شما در اکولپیستیوکس آرتس هستید ما با هم آنجا آشنا شدیم لحن شاد و سعیمی او دلپسند من شد از ته دل با همان آهنگ خندان خود جواب دادم و گفتم بله هفته پیش از ایتالیا آمدم استفانو از شما یک نقاش دیگر که گویی حالا در تهران است سراغ می گرفت. اما نفهمیدم برای چه بترسم. دوید دوی توی حرف من استفانو را دیدید؟ من هنوز یادش هستم؟ آن یک نفر دیگه حتما استان ماکان بوده بله؟ گفتم مگر شما هم ماکان را می گفت معلوم است که او را می شناسم. اگر او نبود که من امروز هزار کفن هم پوسانده بودم. راستی مهربانو، دیدی که استاد نامه نوشته بگیر و بخان. بلند بخوان بگذار مهمان ما هم بشنود. مردی به نیکی و دلیری او من در زندگی ای ندیدم. اصلا از هیچ چیز پروا ندارد. نامه را به مهربانو داد.